أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرين الطاهرین سیم و بقیت الله في الأرضين روحی و العالمين العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان إلى قیام يوم الدین الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاوة أمير المؤمنين عليه السلام و المعصومین علیهم مسلام هدیه پیشگاه مولانا و مقتدانا صاحب الاسل و الزمان و جهت خوشنودی حضرتشون و فرجشون صلواتی تقدیم کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج چکیده ی مباحث این بود که ما همون گونه که خداشناسی رو باید با تمام زوایاش مد نظر قرار بدیم و بسیاری از مباحث مرتبط با بحث خداشناسی، بحث‌های معرفت الله و باید در های معرفتی اینا همش مورد عنایت قرار بگیره در امام شناسی هم همین جوریه چیزایی که ما به اسم فضائل مطرح میکنیم و کتاب فضائل می شاید هیچکس کس کتاب فضائل رو تو نگاه اول حداقل جز کتاب کلامی و کتاب عقاید محصوب نمی کنیم اینکه این که فضائله صورتی که فضائل بخشی از هویت امام محصوم علیه السلامه و این فضائل ولو این که به عنوان شاخص امامت هم مطرح نشده باشه ولی همین که بخشی از چهره ملکوتی امام معصوم علیه السلام رو به تصویر میکشه میشه معرفت الامام ولو درباره صوت حضرت باشه که امر جسمیه ولو توصیف جسم مبارکشون باشه شاید اشاره کردیم اینی که می امام معصوم اگر صوت خودشو آشکار کنه لمحتماله هون ناس. مردم قدرت تحمل نخواهند داشت خب این یه فضیلت علاوه بر اینکه یک فضیلت معرفت الامام هم هست یعنی چی در وجود این آقا و این امام معصوم هست که صداش هم به قبوده باید خود ماوراییه صداش هم یه وقت میگن علمش اینجوره میگیم خب بله دیگه علم, علم و... کتابه یه وقت قدرت هم میگیم خب یدالله هند یه وقت بحث فرمایشات شده میگیم خب لسان الله هند یه وقت بحث صدا شونه. صدای امام محسوم و درستان اگر اون صوت حقیقی آشکار بشه مردم تحمل شنیدنشو ندارن خب این حاکی از یک عظمت و یک خاصیت آسمانی در وجود نازنین حضراته برای با امان شخص امام امتره ما اینا این معرفت الامامه و حتی اخلاقیات هم همینجوره اخلاقیات اهل بیت که اینو دیگه میگه بابا اینجاش کتاب اخلاق اینجاش کتاب امام شناسی نیست که اتفاقا یکی از جذابیت‌های مهم معصومان خلق و خوشونه با یه رفتار یه نفر رو هدایت میکنن با یه مشایعت کردن یه نفری که حالا یا یهودی یا کافره در یک بخشی از مسافت یه مرتبه بگه این چه دینیه شما دارید حق هم صحبت و همسفر من حقش این بود که من چند قدمی بردقش کنم با اینکه مسیر من نبود من از اون راه میرفتم با همین حرکت جزد میشه طرف یا اون داستان امام مثلا علیه السلام دیگه معروف و مشهور اون مرد شامی رو با یک حسن خلق تبدیل میکنم به یک شیعه خوب و محبه. بالا به تعبیر خودش محبوب تر از تو و پدرت در دل من کسی نیست امروز که دارم میرم از این شهر روزی که آمدم مبغوست تر از تو و پدرت نبود الان محبوب تر نیست خوبه امامی که چنین قدرت جازبه ای داره با خلق و خویش بد با همین خلق و هم معرفی بشه خیلی ها مثل همون شخص دلواخته چنین رفتارهایی هستن این سیره مبارک وقتی بیان میشه جازبه های امام مسلم عدیسان وقتی تبیین میشه جزب ها هم صورت میگیره خیلی ها با یک نقطه ریز جزم میشه کافی اون شخص حساسیتی روی اون نکته داشته باشه یه توازا ببینه یه کار خیر ببینه از امامی که در جایگاه سلطنت الهیه خلیفت الله، ببینی شبا داره چی کار میکنه جای کیسه های و نان که برای فقران بره روشونه مبارکش میمونه خب اینا هم ممکن به تنهایی اینا کاری انجام نده ولی کنار سایر فضای معصوم که قرار میگیره یعنی یه آدم معمولی بده کیشه بر آدم معمولی بده اما سلطان عالم هستی ولی که واجب الاطاعه است از طرف خدا او که عالم که فلقت کف دستشه او بره خم بشه نون خشگاهی که برای فقرها داره میبره رو افتاده ریخته داره اونا رو جمع میکنه پس اخلاقیات بخشی از امام شناسیه اخلاقیات معصوم اخلاقیات امام معصوم چطور نقطه رو همینجوری مورد میکنیم ما وقتی میخوایم مطاعن خلافای قاسب رو بگیم به همین زوایه به بد اخلاقی هاشون میپردازه می این بد اخلاق این فضل قلی زاغت نمیتونه خلیفه خدا باشه فا به ما من الله لنتله هم این بر خدا لطف کرد به تو که با مهربانی خدا شما تونستید دلی نرم داشته باشی قلبی رعوف داشته باشی لنتله باشی و لو كنت فظا غليظ القلب لنفذوا من حواليك اگه فز غلی غلیظ قلب بودی فرار میکردن ازت دافعه داشتی جاذبه نداشتی یعنی پس مثال خوبیه که خود قرآن میفهمه اگه این گونه نبودی ازت فرار میکردن خب پیامبر برای جذبه نه برای فراری دادن امام هم همینجور امام معصوم هم باید جاذبه داشته باشه خب بیان این جاذبه های اخلاقی و دانستن این جاذبه‌های های اخلاقی باعث میشه که ما به جای فضو حولک اقبال کنیم به حضرت وقتی لنتله هم میشن همه دورشون جمع میشن آقا بن جعفر صلوات الله علیه در اون برخوردی دارن به اون شخص اومدی خب اون ناسزا میگه جسارت میکنه اصحاب میخوان بکشنش اصلا بگم برین بکشیمش ولی حضرت با یه رفتار کریمانه و با یک رفتار سخاوتی که یز رابو با علمی اصلا مسئله بوده کیسه های اعتایی موسیب نجفه با یک رفتار سخاوتی عوضش می اعلم و حیث و یجعل و غسالته این جمله درسته در زبان اون کسانیه که متنبه میشن ولی به درد بحث ما میخوانه که او کی این جمله رو میگه وقتی مثلا رفته مطالعات امامتی داشته بله یخدای اونجوریم ولی اونها رو که ممکن نیستیم الان میخوام بگیم اخلاقیات معصوم چه کار میکنه و باید جزء عرفت الامام اینا در اداد سایر مواحش بیاد چون این اخلاقیات اینا رو عبرش کرد اینا هدایت کرد وقتی یه شخصی میگه الله اعلم و حیص و یهج خدا میدونه رسالت تو کدوم خانواده قرار بده پس معلوم میشه با این شاخص پی برده به رسالت الله با این شاخص فهمیده که خدا این خانواده رو اینجوری قرار داده و خدا امر خودشو پیام رسانی خودشو در این خانواده قرار داده با اینکه ما به راحتی این مبایست تو کتب اخلاق ولی حالا اشکال که اون که کار غلطی نیست ولی آیا از کتب شناسی هم باید حسفش کنیم؟ نه اینام امامشناسیه جذابیت هایی که در سیره اخلاقی اهلوید علیه مسلم هست تأثیرش از معجزات اهلوید کمتر نیست خیلی فاصله نداره در واقع معجزات رفتاری اهل بید کنیز وحشت کرده که دستور داده بودن حضرت من از پله های پشتبون بالا نرم حالا بچه هم بغلشه بچه حضرت بغلش تا حضرت تشریف آوردن و این یارش ماد که حضرت نای کردن از پشتبون رفتن از ترس بچه دستش افتاد و از دنیا رفت. خب خیلی صحنه ناجوری بود که حالا کنیزی خلاف فرمانش حضرت عمل کرده. این یه طرف بچه هم افتاده از دنیا رفته دیگه. توی دی همین صحنه تخلفی که این کنیز انجام داده از دستور حضرت که کرده بودن که ور پشت اونم حضرت آزادش میکنن یه جمله ای دارن اونجا حالا نقل تاریخی بنظرن ولی یه جمله ای هست که حضرت نگرانن که چرا من این کنیز رو ترسوندم یعنی با اینکه بچه از بین رفته به رحمت خدا رفته، کنم اینه که این از من ترسید و این اتفاق افتاد و نگرانن که چرا من باعث شدم خب اینا ها است، هست رفتاریه و اینا خیلی ها جذب جزم میکنه یعنی بخشی از انسان ها دنبال اینجور فضایل اخلاقی هست برای اینکه جذب گروهی بشن الان یک سری از صوفیه یکی از روش های یا مسیحی ها یا حتی بهایی ها یکی از روش های خوش اخلاقیه خیلی خوش اخلاقی میکنن با مشتریشون با مقازه دارن با مشتری یه سری همینجور تو خیابون ببینن کسی کمک میخواد کمک بکنن بهش با همین جذابیت ها تونستان خیلی ها رو بکشونم با سخاوت قرض میخواد بعضی از ها دیدم خیلی جسته اینکه مثلا ما دستو به هم میکنیم چیزی که در روایت ماست با عنوان حق مومن با نام علامت اخوت میگن نه ما فقیر هستیم هر تامون فقیر الاله هر چی داریم مواساتی که ما در روایات شهر المواسات ماه رمضان یکی از اسامی شهر مواسات در روایت اونها دارن جست مواسات میگیرن مواسات جز فرموشات اهل جزد دستورات برای به شای تربیتی اهل بیته ولی اونا دارن جستشو میگیرن که ما اگه کسی میاد کمارمان خیلی هم با نرمی و اینا کمکش بکنیم معمولا هم پول دارن فرقای انحرافی معمولا اگه نگیم هم معمولا دستشون هم پره خب والا از کجا تأمین میشد بمانه ولی معمولا اینجوری هم. و از این اهرم استفاده میکنن خب یه شخصی ببین آقا شما با چه کسی مثلا میخوای به عنوان رهبر رحبر دینیت به اون وان مولاد به اون وان با چه کسی میخوای بیعت کنی بیا ببین پیر ما چه کار میکنه قطب ما ببین چه کار میکنه و یک سی... جست های رفتاری هم دارند از این دار ها که ممکنه یک ما هم خلافش انجام بریم دیگه بدتر پس این جذابیت های رفتاری همون جوری که فرقای باطل دارن با این جذابیت ها یارگیری میکنن در امام معصوم هم باید به عنوان معرفت الامام و جز جازبه های امام معصوم مطرح بشه و نقل بشه و ما بدونیم اصلا این مهربانی ها ما باید بدونیم که چه امام مهربانی داریم نه که خیال که بحث مهربانی که حالا بحث امامت نیست که تمام اینا معرفت الامام در نقطه اوجش حالا زاویه اخلاقی محبت امام رو وقتی می به تصویر بکشیم خب نمونه آش کم نیست هست روایات خب این بحث رو دیگه باید جمع کنیم فردا شب که انشاءالله به مناسبت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله عليه ها باید عرض ادب بشه نظاه این بحث دیگه امشب جمع بشه ولی هنوز بحث خیلی خام در حالتی طرح اولیه اما همین که بدونیم معرفت الامام سلام السلام زوایای دیگری هم دارد غیر از زوایای رایج در کتب عقاید و کتب کلامی نکته مکمل نکته مکمل که امام شناسی باید رو افس کنه برای خودش مرزهای امام شناسی باید شناخته بشه وقتی خدا شناسی با همه مرزهاش تبیین شد امام شناسی هم باید با همه مرزهاش تبیین بشه که ما با به دام قلوب یا به دام تقصیر هر خطره خطر قلوب خطر تقصیر کمکاری یا اضافه کاری غیر مجاز از حد تجاوز کردن خب اینم یکی از مراقبت های امام شناسیه که ما همه این خصائص امام محسومت سلام رو که جمع آوری کردیم و اینا رو کنار رو هم مثلا چی دیم و یک بحث جامعی تونستیم فراهم کنیم آیا بحث کاملی؟ نه یک سری هم بحثایی که انحرافات مسیر امام شناسی در واقع که آیا مثلا این قلات تکلیفش رو چیه در مسیر امام شناسی؟ شیخیه تکلیفشون؟ چیه؟ اونایی که منکر فضائل هم میگن اینا علم های اینا دانشمندان محترم و خوبند تکلیف اونا چی میشه در بحث معرفتال امام حالا از تشریع خارج میشن خارج نمیشن با این اندیشه. مراقبت های بحث امام شناسی هم بخشی از داستان امام شناسیه و این مراقبت ها رو باید انجام بدیم مخصوصا تو بحث قلوب ما روایت قلوب رو فقط یه یادوودی سریع میکنم که حضرت فرمود اون چیزی که درباره معایب ساخته بودن و جعل کرده بودن حتی حالا تعبیر اینه ما اعجب اغاویل الناس فی و کم و این همه انه اون ربون معبود چقدر فاصل است بین کسی که اعتقاد به خدای امیران مونین داره؟ داره دعا؟ و بین کسی که میگه ابتون آسین یکی میگه ربون معبود یکی میگه ابتون آسین نوزو لا از دوتاش ولی جمله مهم اینه فکان قول مین سبو الال استیان احوان علیه من مین سبو الال قبولیه امالی صدق رزبانه کسی که نسبت استیان میداد نوزه بله به حضرت تعملش از کسی که نسبت خدایی میداد نوزه بله راحت تر بود برای حضرت احوان بود استجر بله نسبت کنا برای حضرت تعملش راحت تر بود تو تحمل نسبت خدایی پس خیلی باید مراقب باشیم و تو بحث امام شناسی این تبصره عدم خروج از حد اعتدال یعنی نه رفتن به سمت تقصیر جز مقصر شدن و نه رفتن به سمت قلو و جز شدن هر دوتا رو باید به دقت حفظ کنیم خب عرضم تمام دیگه حالا چند کلمه روزه بخونیم یادیم من زینب رم زبور مساؤ خمی من زینبم که داغ روی داق دیده ام. من زینبم امیر اسیران کربلا گرچه زنی اسیرم و مهنت کشیده من زینبم که پیر شدم از غم حسین از داغلاله ها که گیسو سپیده من زینبم که زود هلالم غروب کرد من از هلال آیه قرآن شنیده راوی میگه همه ناله میکردن همه گریه میکردم اما فوالله الانسا زینب بنت علی به خدا قسم زینه با زینب فراموش نمیکن تند بالحسین به صوت وقلبا كئيبا وهي تغول ومحمد صل على كمليك وصم هذا حسين مرمل بد ما چقدر سخت بر رسول خدا چنین روزی رو بشنمگو از لبان زینب کبرا ازا حسین که مرملون بد ما مسلوب العنامت و الردای روزه حسین که خوند نوبت خودش رسید دو کلمه روزه خودش خوند و بنات که سبای و واقعا سختش بی مهرم سفر کردن حسین بر رخ مهرم به نوک نظر کردن واقعا سخت از عمری شش برادر داشتن از صفه نامهرمان تنها گذر کردن حسین ما تا هم تو یا شریق مقدرا مقدرن مكتوبا یا رب بال حسین به حق حسین اشخاص در الحسین به ظهور نه یا رب فاطمة به حق فاطمة اشب صدر فاطمه به ظهور الهجه يا رب الهجه به اقل الهجه صدر الهجه به ظهور فرج عنه و عن عاجلا قريبا فرج عن جميع شیعته و محبی حیم بجاه محمد وآله الطاهرين